بسم الله الرحمن الرحیم بنا می خراوند بخشنده مهربان قل اعوذ بر رب الفلق بگو فنا می برم به پرده گاز سپیده سفیدی سوف من شر بما خلق از شر تمام آنچه آفریده. آفریدا ومن شر غافق اذا وقرد و از شر تاریکی هنگامی که گسترش می آبرد و من شر نفتاتی بالعقد و از شر آنها که در گریه ها می دمانید و من شر حافد اذا حسد و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می بستد